نه در فعالیت‌های کلیدی‌تون کلیدیتون یکباره کاری کنید. یهباره یک کاری یکی از قویترین شگرد مدیریت زمانه. همین شگرد به تنهایی از همان روز اولی که شروع به اجراش می کنید کارایی شما رو تا پنجاه درصد یا بیشتر بالا می بره. وقتی یهباره کاری رو برای خودتون تبدیل به عادت می حتی اگه هیچ سوصیه دیگه این برنامه رو انجام ندید میتونید کاراییتون رو واقعاً دو برابر کنید. روش کار ساده است. همه کارهایی که باید انجام دهید رو فهرست کنید. مهمترین مورد در فهرستتون رو انتخاب کنید که با ارزشترین استفاده از وقتتونه. بعد شروع به کار روی اون مهمترین کار کرده و خودتون رو منضبط می‌کنید که سر اون بمونید تا صد درصد کامل بشه. آندرو کارنگی که یکی از ثروتمندترین افراد دنیاست، کارش رو به عنوان یک کارگر روزموز در یک کارخانه فولاد در پیتزبرگ شروع کرده بود و عمده ی و موفقیتش رو به خاطر این فرمول ساده میدونه. او میگه که این کار در زندگی اون و هر کسی که برای اون کار کرده تحول ایجاد کرده. یادتون باشه دو کلید موفقیت عبارت از از تمرکز و حواس جمعی، توانایی شما در این که بدون انحراف و حواس تموم ذهنتون روی یک چیز که مهمترین چیز میباشد متمرکز کنید و تا وقتی کامل بشه سر اون بمونید بیشتر از هر عادت ای که در خودتون ایجاد کنید باعث موفقیتتون میشه واقعیت اینه که اگه کاری رو شروع کنید و بعد اون رو کنار بگذارید و بعداً به سراغش برگردید و دوباره شروعش کنید در نهایت ممکنه زمان لازم برای انجام اون کار رو تا 500 درصد یا پنج برابر اضافه کنید. از طرف دیگه اگه کاری رو دست بگیرید و خودتون رو منذبت کنید که سر اون بمونید تا تموم بشه میتونید زمان لازم برای انجام اون کار رو تا 80 درصد کم کنید. این یکی از اسرار بزرگ مدیریت زمان و کارایی بالاست. عادتی است که با تکرار و تمرین دوباره و دوباره میتونید یاد بگیرید. یه بار کاری دو نتیجه عمده داره. اولین که یکی از ارزشمندترین منترید، و پردرآمدترین افراد در رشته کاریتون میشید و این اتفاق هم خیلی سریع میفته دوم که از اولی نیز میتونه مهمتر باشه اینه که هر بار یک کار اصلی رو تمام میکنید در بدنتون آندروفین ترش رو میشه مغزتون یک ماده شیمیایی آزاد میکنه که به شما احساس خوشی میده یک احساس شادی سرتا پیدا میکنید و خود هاتون بالا میره احساس پر انرژی بودن و اشتیاق و انگیزه می کنید که به سراغ کار بعدی برید. یه بار کاری یکی از مهمترین اصول موفقیت کتاب حال کشف شده.